جامعه شناسان و اقتصاددانان عادت دارند که کمیت تولید و مصرف را شاخص میزان رفاه و آسایش بشمارند در حالی که نه به تولید مربوط است و نه به مصرف تنها و تنها به فاصله میان نیازها و برخورداریها فاصله های کمی و کیفی این است که بهشت عدن را نباید در آبها و آبادانیها و برکت و ثروت و زیبایی آن دید بهشت عدن را باید در احساس و ادراک آدم و هوای جست که در آن بی و بی درد و از اینکه در برابر چشمان خداوند اریان نمودار شوند شرم نداشتند که هنوز هوا شیطنت اسیان را در جان آدم نریخته بود و آن میوه ممنوع را به او نخورانده بود و میبینم که گیاه آرامتر از جانور و جانور آسوده‌تر از انسان و فتلیشا بی تر از مولانا و اوناسییس خوشبخت‌تر از مترلینگ و ابوالعلا معری است و انسان تاریخی انسان غریزی است وجدانش بیشتر عاطفی است به گفته هگل روح مطلق در او به احساس نیمه آگاه رسیده است گرچه هنوز از تعقل که آگاهی مطلق و مجرده است دور است گرچه من به این سخن او معتقد نیستم که انسان متمدن گذشته از انسان جدید کمتر خداگاه بوده است بلکه متفکر قدیم درست برخلاف امروز از خود بیشتر میتوانست از سخن بگوید تا از جهان چون به خود بیشتر میاندیشیده است انسان امروز چندان به طبیعت و عینیت زندگی غرق است که خود را از یاد برده است حرف یاسپرس و مذهب به هر حال بیش از علم و عرفان بیش از تکنیک و پرستش خدا بیش از پرستش زندگی به آدمی تأمل در خیش را پدید میآورد و خیشتن را طرح میکند اما این سخن او درست است که تاریخ از اینیتگرایی یا ابژکتیویته به ذهنیتگرایی یا سبژکتیبیته سیر می کند. این مسیر را که هگل طرح می کند من در زمینه دیگری با تلقی دیگری قبول دارم نه تکامل ذهنی و خداگاهی انسان شرقی به انسان غربی و دوران مذهبی به دوران عقلی و در دنباله آن موهومات خودپسندانه نژاد و ملت و دولت پرستانه زشتی که او ردیف کرده است بلکه تکامل فتیش پرستی در مذهب به سوی الله پرستی در اسلام در آغاز معبودها ها مهره و برخی حیوانات تاباییسم و پرستش ارواح مردگان انیمیسم و پرستش مظاهر طبیعت ناتوریسم آتش و ستاره و پرستش الهه شخصیت های معین و مشخص شبه انسانی که هر یک سلطان و فرمانده یکی از قوای جهان و یا امور انسانند میتولوژی، پولیتیسم از قبیل پرومته، زئوس جوپیتر، تمیس آمور گیا، مردوک، بعل، تیر، مریخ، بهرام. این شخصیت ها نیمه اینی، نیمه ذهنی هند. و سپس تکامل به سوی تجرد و توحید مطلق جهانبینی فلسفی و احساس مذهبی ادامه می‌یابد. تا به تسلیس رومی و یهودی فیلون که به سه اقنوم ذات قدیم و مستقل معتقد بود و بعد در مسیحیت مذهب کاتولیک را به وجود آورد و به صورت سه مفهوم مجردتر، پدر پسر روح القدس را که هم سه وجود مستقلند و هم یک ذات واحد درآمد و در مذهب زرتشت به ثنویت رسید که دو نیرو شد و کاملا مجرد و ماورایی و در اسلام به توحید یک حقیقت بزرگتر از توصیف که از خیال و قیاس و گمان و وهم هم برتر است و یک تجرد مطلق ماورایی بیرون از هر حد و مرز و تعینی است همه وجوه معنوی انسان همین مسیر را طی می کند رعالیسم ارستو تا ایدالیسم هگل و از اومانیسم یونان طلایی تا اومانیسم سارتر عقل فلسفی قرب همین تحول را پیموده است نقاش و مجسم ساز کلاسیک حتی خدایان را به شکل گاو و اقاو و گرگ و پیکری نیمه اسب نیم انسان و امروز حتی کوه، دریا، جنگل، آسمان و قیافه انسان مشخص و معلومی را از ابعاد، الوان و اشکال باقی خیش به در می کشد و خود رنگ و طرح و بعدی ذهنی یا استعاری بدانها میبخشد. به قول نویسنده‌ای که در دفاع از رمان جدید سخن میگوید، درست است که رمان جدید بسیار از اشیاء حرف میزند زند، به توصیف های مبسوط و دقیق اشیاء میپردازد، اما این اشیاء در رمان جدید نه آنچنانند که در عینیت خارج وجود دارند بلکه آنچنان توصیف میشوند که در ذهنیت درون نویسنده حضور دارند این اشیاء یعنی خود انسان نه آنچه خارج از او برای خود هستند نقاشی و مجسم سازی امروز تقلید طبیعت نیست ادای اشیاء و اشکال واقعی را در آوردن نیست با سنگ و رنگ آدم درست کردن یا صورت کشیدن نیست. با سنگ و رنگ حرف زدن است. مجسمه مدرن میدان روتردام در هلند تندیس یک انسان نیست. تندیس انسانیت است. انسانیت پس از جنگ انسانیت در جنگ است. تابلو صحنه جنگ استرلیت را رسم کرده است اما بر دیواره یونسکو. پیکاسو، صلح و جنگ را معنی میکند در آنجا به جنگیدن می نگریم و در اینجا بدان دان می اندیشیم هنر جدید نه تنها عینیات اشیاء مادی و پدیده های طبیعت را می کشد تا از رنگ و شکل واقعی خود بیرون آورد بلکه هنر مجرد اورفیسم در نقاشی امروز بر سر آن است تا رنگ و طرح را نیز که همیشه اسیر شی بوده است از ذات خیش منسلخ کند و آزادشان سازد صفاتی مجرد از موصوف در شعر نو دیری آغاز شده است و رواج عام یافته است اما در نقاشی و پیکرسازی چون این تفکیکی سخت دشوار است به هر حال نقاش امروز نه دیگر یک هنرمند دستی است همچون رامبراند که نیمه هندوانه را چنان میکشد که دهن بیننده به آب می گردد بلکه اندیشمندی است همچون دولاشابل که جاکلید قفلی را که بر در زندانش زدهاند به شکل یک زبانه آتش یک مشعل فروزان آفریده است او نخواسته است سوراخ قفلی رسم کند درست بر انگاره واقع خواسته است پنهان از چشم زئوس یا پرومته حرف بزند یا بیان که نمرود خبر شود به ابراهیم پوشیده پیام بفرستد یا خواسته است که بگوید زندانی در انتظار دو موعود است یکی آتش و دیگری آتش یا خواسته است بگوید که آنچه گداختن و سوختن شمع را پدید آورده است زندانی بودن پروانه است یا خواسته است بگوید که انسان زندانی جهل است یعنی آتش آتش بینایی است یا زندانی کفر یعنی آتش آتش ایمان و زندانی بیداد و آتش، آتش داد یا زندانی یأس و آن آتش امید یا زندانی جبر و آن آتش رهایی یا زندانی شب و زمستان و آن اشارتی به فلق، کنایتی به اسفند یا زندانی عقل و آن پنجره طلایی عشق و چرا میگویم یا مگر آنچه میخواست است بگوید یکی از اینهاست اگر زبان هنر زبان یک حرفی نسر است، خواست از همه اینها را بگوید و هیچی یک از اینها را هم نگفته است. خود یک معنا و احساسی آفریده است که به این معانی و عواطف شبیه است. به حال هنر مسیر هگلی هستی و انسان را می کند. رفتن به سوی تجرد از واقعیت مادی و عینی. آرلکن های پیکاسو را نگاه کنید رقص نیز دیگر ارائه زیبایی‌های سینه و شکم و کمر و تجسم حرکات و اتوار نرم و موزون اندامهای تن نیست نمایش کش و قوس‌های حاکی از تمایلات غریزی و تحریک انگیزه‌های جنسی نیست باله ناتورالیستی امیل امروز به اساطیر یونانی یا اسرار شرقی بازگشته است بیان التحاب و حراس و اسیان و خشم و شور و فریاد انسان اصر استراب و اتم و ماشین و خلع روحی و فرو ریختن همه پایها و گسستن همه پیوندهاست روحی که همچون کرم ابریشم در پیله دقیق و زیبایی که خود بافته محبوس شده است و احساس خفغان کرده است اشرافیت لطیف و رومانتیک اصر زوغ و آرامش و رقت احساس ایتالیا و فرانسه رنسانس که در تالارهای مجلل و با آهنگهای نرم و کشتار و سای روشنهای خیالانگیز و افثانهی، قندیلهایی که از آن نورهای رؤیایی و اسرارآمیزی در فضا می دست در دست هم و چشم در چشم هم، نرم و پرشکوه و, و سرشار از وقار و نزاکت و جلال نمی و به نشانه تربیت بالای اشرافی به زبان کرنی و رسین متون لوسید و اندرو مکرا آشغانه اما نرم و به هنجار و سرشار از نجابت در گوش هم زمزمه نمیکنند. در هم میلولند و زجه میکشند و بر هم میتازند و از خشم و خروش و فریاد تغیان و بیتابی و التهاب قیامتی برپا میکنند که زمین را به لرزه میافکنند و هوا از هیجان و تشنج داغ میشود و رنگهای زننده و نورهای تند و هراسان نیز همراه با ابزارهای موسیقی که همگی از جگر شیون میکنند گویی به فریاد آمدند اینها نمیرخصند بیننده خاطر جمعی که از صحراهای آرام و پهناور و شهرهای ساکت و محزون و صبور شرق آمده است میگوید اینها مثل اینکه با هم دعوا دارند چه جوانهای شر و خطرناک و خشنی هستند، اما نه اینها بسیار مسومند، بسیار معصومتر و اهلیتر از چهره آرام و مقدس آن روحانی نورانی و مهربان کلیسا و آن اشرافی تربیت شده نجیب و معدب اینها بیگانگان ناسازگار زمان خیشند انسانهایی که نچندان ساده هند که آخرت او را باور کنند و نچندان پست که به دنیای این خوشنود باشند دین خرافه طبیعت بی صاحب، آسمان بی پیک و پیغام، زمین تیره و زشت، تمدن بار سنگین و بی معنایی دوش زندگی مصرف و مصرف، هنرها همه سربندی، فلسفه همه وراجی، وجود، پوچ، انسان پوچ بودن عبس، هستی، گنگ، مرده، بی ابدیت صحرای سهرای بی کرانی، سوت و کور. به سطوح آمدند. وحشت بیقرارشان کرده است جنون، تقیان، انتحار، قصاوت دلهوره، فریاد یا فراموشی، مستی، تقدیر و باز هم تقدیر الستی، ماری هروئین یا هیجان، شعبده یوگا، ریازت، مزداییس صوفیگری، جادو، بازی، با اروا، بالاخره یک کاری خواهید گفت، اینها که بیماری است، انحراف است. آری اما بیماریها ها و انحراف ها هم تجریدی، ذهنی، درون ذاتی و واقعیت گریزانه است. فراموش کرده اید که بیماری های دیروز چه بود؟ و با تاؤن، آبله، تراخم، امراض ناشی از گرسنگی، معلول آب و هوای نامساعد، شرایط ناسازگار کار، همه عینی همه مادی، همه واقعی، از آنها که جامعه هایی که همکنون در قرون پیش از میلاد و پیش از اسلام و حتی پیش از تاریخ زندگی می کنند دارند. نویسنده معاصر فرانسوی درباره رمان امروز می نویسد رمان امروز تنها و تنها متوجه ذهنیت تام است. حتی آنچرا ما امروز سبک رئالیسم در زندگی میپنداریم که همه از اوزا و اشیاء و امور محسوس خارج از درون ذات آدمی سخن میگوید عینیتگرایی گرایی یا برون نگری نیست بلکه درست برعکس از درون نگری است نه به درون نگری این اشیاء پس از گذشتن از ذهنیت نویسنده نگریسته میشوند و سپس به وصف میآیند آسمان در یک رمان نه همان آسمانی است که بالای سر ما بر پای ایستاده است بلکه آسمانی است که در حالت و احساس من نقش شده است و آن را هزاران عاطفه و حساسیت ها و حالات و خاطرات و تمایلات و خصوصیات معلوم و نامعلوم من احاطه کردند این است که گاه آن را آبی می‌بینم گاه سبز گاه فولادی رنگ گاه بیرنگ و حتی گاه زرد آنچنان که تنتوره نقاشی کرده است و گاه بنفش آنچنان که در برخی از مینیاتورهای اصیل ایرانی میبینیم شعر ما نیز همین سیر هگلی را طی کرده است از رودکی و منوچهری و فروخی و انصری در قرن چهارم و پنجم بگیرید و بیایید تا سعدی و حافظ و مولوی و تا برسد به شعر نو هنری بیشو را بخوانید این چگونه حرف است بیهوده نیست که آن فریاد میزند، بیایید هنری بیشو را بشناسیم. سورئالیسم بیش و كم سراسر جهان اندیشه و احساس و ابداع هنری را تسخیر کرده است. اصالت شکل، اصالت تکنیک در هنر امپرسیونیسم همه تلاشها و تظاهرهای درست و نادرست روح است، در فرار از قید و بندهای واقعیت عینی طبیعت آنچنان که هست سورالیسم و سریحتر از آن هنر پوچ و تئاتر پوچ میکوشد تا از قید و بندهای عقل یعنی علیت و منطق و رابطه های جبری میان مقدمه و نتیجه علت و معلول خود را رها کند کوششی که از قرنها پیش ارفانحالی حکمت اشراقی و دینی آغاز کرده بودند آنچه احساس همواره در آرزوی آن است و علم و مسلحت که هر دو کار عقل است این همه کششی که دلها به حکایت کرامات و خوارق عادات و اساتیر و افسانه ها و قرائب و داشته داشتند و هنوز دارند تجلی همین آرزوی پنهان در عمق فطرت آدمی است ماکس پلانک میگوید هرگاه که علم شکست می‌خورد، یک نظریه علمی غلط از آب در می‌آید، قریب شادی و پیروزی از جان مردم برمی‌خیزد. موفقیت عقل هیچگاه شورانگیز نیست. آدمی همیشه دوست دارد که شاهد پیروزی اشراق بر منطق باشد. علم خار و احساس پیروزمند و سرفراز گردد. علم به ما قدرت میبخشد. به احساس زندگی هیچ کس نیست که هنگام خواندن اوتولوژیای معقول ارسطو همان احساس را داشته باشد که در خواندن ایلیاد موهوم هومر سمفونی باخ که برای صد هزارمین بار به صدا می آید، هنوز هم شهر وین را میلرزاند. اما دانشجویان ریاضی و فیزیک را باید به اجبار مسلحت و ضرورت و تهدید استاد و تطمیع تصدیق واداش تا نسبیت انشتن یا کلکول دیفرانسیل را بخوانند. بیشک خیام در لحظاتی که ربائیاتش را زیر لب زمزمه می کرده است بیشتر اقنا شده است تا اوقاتی که تقویم جلالی یا معادلات چند مجهولی جبر و مقابله اش را مرور می‌کرده. در این هنگام موفقیتهای عقلش را می دیده است و در آن حال خودش را. روزاس معتقد است که انسان تاریخی به گفته هگل انسان عاطفی و اشراقی بوده است. یک نوع آگاهی مبهم احساسی نسبت به خویشتن و نسبت به جهان داشته است. تا می رسد به دوران پیروزی عقل اصری که فلسفه جای مذهب را میگیرد. یعنی اندیشیدن و تحلیل کردن و شناختن و نتیجه گرفتن جای تعبد و عشق و الهام و عواطف و احساس را در اینجا بران نیستم که موارد اشتراک و اختلاف خودم را با هگل طرح کنم همینقدر کافیست بگویم که سیر کلی ایدئالیسم هگل را با تغییراتی در تعبیرها و تلقیها بسیار عمیق و قابل تعمل و به اعتباری درست می دانم. اما مثالها و مصداقهایی را که نشان می دهد چندان باور نکردنی و عجیب می آبم که ناچارم یا به جهل او منصوب کنم یا به قرز او این است که با همه اهمیتی که برای اندیشه او قائلم. حتی از نقل موارد استناد و نتیجه گیری های عینی و اجتماعی و سیاسی او شرم دارم اگر انسان شرقی و احساس و مذهب را همچنان که او میفهمد و میشناسد فرض کنیم سخنش درست است بیشک دوره جدید که اصر پیروزی عقل است انسان به خداگاهی و تجرد ذهنی سریحتری رسیده است اما من هرگاه قه شگفت خلقت آدم را در تورات و قرآن و متون ادیان ابراهیمی میخوانم درسهای اپانیشاد یا اندیشه های عمیق و باریک فلسفی را در فرهنگ روشن و انسانی ودایی و بودایی میسنجم و عرفان خودمان را ارزیابی میکنم میبینم که مسئله انسان حیات من جهان وجود اساسی ترین اموری است که اندیشه و روح شرقی همواره بدان مشتقل بوده است و بازگشت به خود و خودشناسی انسانی و ذهنیت تام و متعالی شاخصهای اصلی فرهنگ و فلسفه ماست. و مظاهر عقل امروز قرب، کیرکگارد، یاسپرس، هایدگر، سارتر، گنون، پاسکال، برکسون، هانری پولسیمون، بکت، کاما، اریک فروم و دانته همه از انسان و حیات و خودیابی سخن میگویند. در برابر لاتزو، مهاویرا بودا، نویسندگان اپانیشادها، فلوتین، غزالی مولوی، ابن عربی، شیخ اشراغ سهر عین قزات، القزات، ملا جوانان فیلسوف هوشمند و تازه می نمایند که در قلزت دود و دم فضای زندگی مصرفی و بهشت ابله فریب به برجوازی جدید بوی خوش گل سوفی را از دور استشمام کردند حرف مرا با رجزخانی های و فخر فروشی های نجادی و قومی و مذهبی و فرهنگی اشتباه نگیرید من همیشه از بیماری خودنمایی و شوینیسم و فاشیسم و اگوسانتریسم های رنگارنگ مسون بودم این حرفها متناسب شأن همان هنر نزده ایرانیان است و بس هاست این تفاخرات جاهلی در من نه پس از نهضت اومانیسم و لیبرالیسم و انترنسیونالیسم و انقلاب کبیر فرانسه و چپگرایی روشن رخت بربسته بلکه در قضیه خلقت آدم از گل و هوا از آدم و بشریت از این دو حل شده است. در تاریخ اسلام نجات پرستی و ملیت گرچه به صورت انحراف سیاسی یا اخلاقی در برخی از دوره های استبدادی سلطنت های اموی، و یا جناهای افراطی شعوبی در عرب و ایران تجلی کرده است اما هرگز وجهی فلسفی و علمی به خود نگرفته است زور بوده اما فکر نبوده است رئالیسم که در برابر رمانتیسم سطحی و آه و اوهی و احساسات نازک نارنجی برپا خواسته بود ماتریالیسم که عکس عمل طبیعی فرهنگ و روح انحرافی مذهبی و بینش انحطاطی ماورا و طبیعی و زهدگرایی های افراتی اجتماعی و جهانبینی و اخلاق و روحانیت ضد زندگی و شخصیت بشری و مغایر با تمدن و حیات و حرکت بود. و سیانتیسم که در قرن 18 و 19 رسالت فکری و اجتماعی انسان را از دستهای فلج مذهب منجمد قرون وستایی گرفته بود و هر دم پیروزی شگفتی در کار کشف و خلق به دست میآورد و صدها هزار امیدی که در دلها پدید آورده بود قرور و ایمان بشریت نورا را و باغهای سبز و سرخی که بورژوازی قرن هفده و هجده و نوزده به انسان رسته از زندگی خشک و قانع و محروم و محدود قرون وسطای مذهبی نشان می داد و ماشین و استعمار به یاری او آمده بودند تا ادعای او را در ساختن بهشت معود بر روی زمین تحقق بخشند و انسان قرون جدید را در مصرفها و لذت ها و برخورداریها هر روز نوتر و هر روز بیشتر غرق ساخته و از عیش مست کرده بود برای انسانی که نه اغده های معنوی قرون وسطایی را دارد و نه محرومیت مادی قدیم را دیگر امروز اندیشه های یقین آور و نویدهایی شورانگیز و امید بخش نیستند انسان به میزانی که از وسوسه آب و نان فارغ می شود و در زندگی روزمره می آساید رنج وجودی و دردهای فلسفی و پرسشهای دشوار و حیرت افزای همیشگی سنگین و آزار کننده تر می شود. این است که بورژوازی و سرمایه داری که در دو قرن پیش امیدوار بود که با ساختن زندگی سیر و پر فلسفه اصالت مصرف را جانشین همه مذهب‌ها و فلسفه سازد و کارگر را با نونوار کردن وادارد که به جای انقلاب ادای پولدارها را درآورد و پولدارها را با هنرهای دروغین حیجان و تفنن سرگرم کند به میزانی که در تحقق نقشهش موفق می شود در نیل به هدفش شکست می خورد. و اسیان امروز انسان مرفه نشان داد که آن دقدقه همیشگی روح را با فریب خوشبختی نیز نمی توان آرام کرد. و نه تنها برجوازی با بهشت پلید و دروغین و ناپایدارش بلکه خداوند نیز با بهشت پاک و راستین و جاویدش انسان را نتوانست در نابینایی مطیع خیش نگه دارد و در کنار جوی شیر و اصل و چشمه آب حیات کوسر و زیر سایه توبا و در آغوش هور و قلمان از نیاز فهمیدن بی نیازش کرد و تلخی و بدبختی شعور را بر لذت و سعادت بیشعوری برگزید و اسیان کرد و آن میوه بینایی را خورد و تا از حلقومش فرورفت بهشت عدن در چشمش کبیر خشک شد و آرامشش استراب و یقینش حیرت و لذتش علم و سیرابیش آتش و این است که ظلوم و جهول است و این است که تنها انسان شایسته آن است